حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بده اما کبادارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازید با اش دل ببندید هجما که دلب سبز چید توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا سلام به همهگی حال اهلتون چطوره؟ یک هفته یه دیگه و یک رادیو پسوردای دیگه آغاز شد با شما این طبق معمول هر هفته. شاعرمون البته این بار بابا شاعر اوریان همون شاعر برنامه رادیو پس این دفعه بابا شاعر اوریان شده شعر سرودن گفتن که هنرمندی اسیرم چون ننالم دارم از دست میرم چون ننالم همش سانسور و و خط قرمز توی چنگاول شیرم چون ننالم یه دورونی توی دربار شاهان یه روزی هم علیه بیگناهان فروشم من هنر را قیمتش خوب بدون حسرت و اندوه یاران هنر بی پول و مایه پرخسک بی بدون پول یه چیزی کم کمک بی بیا پول و هنر با هم عطا کن هنرمند آیدابتش نم نمک بی با تشکر از شاعرمون این هفته دیگه تریپ هنری برداشتیم متوجه به اینکه خودمون از هر بیست انگشت دست و پامون فقط یه هنر میشه که یک سری میزنیم به دنیای هنر و هنرمندها این هفته تا ببینیم اونجا چی میگذره به کی میشه گیرای ریز و نامحسوس پسوردایی داد به کی میشه گیرای جفت با تو صورتی گل دروش مخصوص به رادیو پس داد پس هرچی هنر دارید این هفته بردارید بیارید بریزید وسط تا دیر نشده که فقط هر شب از ساعت 9 تا ده وقت دارید برو بریم آقا خانمه آقایون دکتر خانمه آقا پسرا، آقای روحانی بعد از برجام و لغو تحریم ها با آزاد شدن پولای بلوکه شده انقدر تیکه و کنایه از این سایت های و ولایت مدار شنید که پس چرا دولار ارزون نشد و چرا رکود سر جاشه و چرا وزن مردم خوب نشده و اینا که دیگه چند روز پیش دیگه دلش طاقت نیاورد و در حین یک سخندانی در مورد علله رکود کشور و خوابیدن تولید اینجوری گفتن شما وقتی میخواید تولید کنید یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا و قاچاق وارد بکنه خب نمیذاره شما رشد کنید باید جلو این فساد گرفته بشه باید سیستم گمرکی ما شرایطش بهتر بشه بله بند خدا احمد نجاتم از برادران قاچاخچی یا یادتون با زیاد یاد میکرد منطقه اونم خب مرخوز به هیا بود و هیچ وقت مستقیم اسم نمی برد دیگه شیخ حسن هم اعتمالا منظورش از دستگاه فاسدی که قاچاکی کالا وارد میکنه دیگه همون برادران قاچاکچی و به اصلاح معدبانه سپاهه با مزدستا با این این نهاد نورچشمی و دست راست معظمله و مستقیم زیر نظر رهبر ایرانه اون وقت رئیس جمهور ازش به عنوان یک نهاد فاسد و قاچاقچی یاد میکنه یعنی من جای رهبر بودم من برمیخور یعنی که چی آ اون از هاشمی که رو شورای نگهبانو که نسبشون رو رهبر خودش انتخاب میکنه زیر سوال برد این اینم روحانی که به نهاد عزیز دردونه رهبر میگه فاسد و قاچاقچی این حرفا به خدا با همین فرمون بریم جلو چند وقت دیگه آقای روحانی تو سخنرانی خودش میگه یک شخصی که بالاترین مقام کشور هم هست و من نمیخوام اسم ببرم کشور را بیچاره کرده است به جان خودم دیگه دار میریزه دیگه حالا صاحب خودتون ببینید سلام و خیلی نرم و منازوک در همین ابتدای برنامه ارز می کنیم خدمت تامیون هنرمندانی که هنرشون و وسیلهی قرار دادن برای رسیدن به دنیایی بهتر و زیباتر بلدات یک سلام آهسته تر هم ارز می کنیم خدمت اون عزیزانی که هنر رو فقط به خاطر دل خودشون دنبال میکنن و اساساً کاری به بهتر و بدتر شدن دنیا ندارند لطف خدا راحت باشین به کارتون برسید مزاحمتتون نمیشیم ما این دل ما هم که قور قور داره میکنه گشنمونه بریم سراغ استیک است. اولین استیک این هفته رو آغاز میکنیم با اینو می که مثل همیشه گاز استیک رو گاز خونتون بدونین گاز خودتون بدونین ما رو از غذای خوبتون بیبهره نذارید به سرعت بیریم سراغ شرکت کننده های استیک امشب اولین شرکت کننده از ناف تهران آقا سابیلیکو آقا جون از غذای اصل تهران، اصل تهران، قیم سبزی اشتر نکنی نه قرم سبزی نه آقا جون ترونه. از زیاد. از یاد اسکری بچه در خونگاه به بهونه آقا. آقا از آقا بریم سراغ پرودیویسرها یا همون شفای برنامه شهرام که در نظر داشته باش همه قضاها جنوبی ان و شعره دیگه اونها رو از جنوبی ها یاد گرفتن ما خیلی دوست نداشتیم غذای شما نه بله دوست نداشتن مرسا داداش صفای وجوده من خاطر پای بچه تهرون ان ان شاء الله قیمه که غم نباشه بله ممنونم از نظرات های ما بریم سراغ شرکت کننده بعدی من محسنم به بانکوگ رایی میزنم قضان علی خورموه هم کشکینا که کشکینا هم به این شکل میکن گردم آرد میکن و دو و ماس خاتیش میکن یکی دو روز میلینش که خوکزدار بود بعد که خوک بی یا میدنش ریگاز. یا میدنش وقت افتو که جمع بود و یک بعد به موان کشکینا هم بعضی هم عدستی من مونن یا نخود حتی بازیم هم مونن میپردنش من کشکینه شف جلال والا من با توجه می که کار کردم با حسدهای جدید رو دوست دارم وقا محصر رو تو گروه خودم میتونم قبول کنم بسیار خوب منم فکر میکنم که این همه هجوم حضور نخود به نظرم میتونه نفاخ باشه <تصفيق> بنابراین من نمیتونم بایشون با کار کنم <تصفيق> بسیار خوب بروس سراغ شرکت بعدی بعد <تصفيق> سلام امدوارم چه حالت خوب باشه آزربایجان ما یه يت... آش داره بهش میگن دوغدا دوغدا یعنی همون آش دوغ ماست آب پرنده تخم میذارن روش بعد که تخمه بختن با سبزی ممزی همه چون سبزی داره بله یه دونه سبزی داره اسمش چوشنگه چوشنگه رو که ریختن نخود زیاد و با برنج همینجوری میذارن یه سه چهار ساعتی میپزه بعد میخوری با نول و لواش با نول و لواش که بخور این نذلی داره ممنونم از شما شرف سعید سانه یاشا شیش ایلت تعریف لده ناجالدخ والله نمه نه به بخش کسی ترجمه کنی ترجمهش هم بگو یعنی جوری به ابو تاب گفتی که گوش نمونش آفریم آفریم شیف جلال راستش من طرف دارم و لباشم و هر چیز دیره با لباش دوست فقط یک پخم و مرغ روی آشو من خیلی نگرفتم منم والا نفهم نفهمیدم پخم و آش چه شکلی میشه شرکت کننده بعدی استیک هی گومادی هوايي اميت. How is going buddy? How are you mate? In Accent Australia من با یکی کار از ماستر شيفاي <تصفيق> استرالیا کار مي کنم و تقریبا <تصفيق> با هر چیزی غذا درست کردم ممکن میتونم بگم خوشمزه ترین گوشتی که پختم بوده. باید به با با با صورت ریل یا میدیوم ریل حتما پخته بشه اگه بیشتر پخته بشه اصلا خوشمزه نیست yes. واقعا خوشمزه است oh, توصیم yeah. میکنم ترایلش بکنیم نیما هستم از استرالیا حتما کرکدائل رو ترای میکنیم شف شهرام که که ما کرده بودم اما نپخته بودم بودمشت حالا فرده میرم یه دونشه بگیرم ببینم چه مزه میده بالا با توجه به این که کروکودایل معمولا همه رو میخوره من فکر کنم حجوم حضور کروکودایل توی غذا حس خوبی داشته همکار عزیز ببخشید حجوم حضور مال بنده بوده جسارت های من آزم میخوام مثل جمعه این که اینکه شما ناراحت شدی اگه میخوای آشی آخو چیزی آخو درست, درست بکنم که در نه. اگه اجازه بدید بچه رو پروڈیسورای عزیز وقت نداریم ایشالله توی استیک اکسرا ادامه میدیم این بحث رو. ممنونم از شفای عزیز خوبیم هم شرکت کننده های امشب استیک یک نگاه سریع هم داشته باشیم به عزیزانی که غذاهاشون رو برای ما فرستاده بودن ولی به دلایل مختلف به گاز استیک را پیدا نکردن از یز زنگ بزنم خدمت میخوام یه پیش غذا یا پس غذا خدمت معرفی کنم به اسم شولی غذای بدون گوشت بدون آقا من میخواستم میگم که خب ما حالا تهران به دنیا اومدیم مجبوریم تنه که بگیم چهلو کبابه دیگه من از احواز تماس میگیرم زنگ نزدم از غذای اینجا تعریف کنم زنگ زدم و آقا رو خدا نمره منفی بدید آقا ما یک قضایی داریم تو محلمون به اسم آبگوشت بامیه آقا اسمش هم حالتو برمیزنه خیلی بنده خدا و گیرید امروزی که میخوام به تو معرفی کنم مایث اوه. یکی از پرت رختتارییم غذا های جنوبه یه غذا بود دسر بود میان وعده بود خونه یکی خوردم اسممبال بود چنگمال. بله تشکر می از همه شما و باز هم یادآوری میکنیم که گاز استیج بدون شما خاموش میشه و از شما تا درخشیدن در استیج فقط یک گاز فاصل است تا فردا شب هلله مش میواره سرمون باینه میشا که که دلمه دلمه دلمه دلمه تو دل تنگ و انتظار زده با دل گتشتو دلمه گتشتو دلمه, دلمه>, دلمه> Middle سراغ رادیو پاسوردهای امروز رادیو پاسوردهای 982 امروز شنبه 24 بهمن 1394 میریم سراغ رسالت هنری هنر برای همه چیز و هیچ فالوگی شماره 982 بدانید و آگاه باشید در عالم هنر و هنرمندی اگر هنر را برای خاطر خود هنر دنبال کنید شما را هنرمند بی تعهد و بی مسئولیت می‌خوانند و اگر آن را وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی قرار دهید کار شما را کم ارزش و دارای تاریخ مصرف قلمداد خواهند کرد پس در وادی هنر هر کار عشقتان کشید بکنید که آخر سر به هر حال مورد قضاوت و انتقاد و حمله قرار گیرندگانید نید جمعی از هنرمنداب و خودشونم نمیدونن دنبال چی تو هنر بوده ها و هنر براشون نه دنیا داشته نه های رادیو پس فرد دا دا دا, دا. دا. دا. دا. دا. دا. داریم راجب امروز راجب هنر و پول و پول دار حرف میزنیم بعضی هم هستن یه جوره دیگه از راه هنر نون میخورن. یعنی با آموزش هنر. ولی معمولا هنرمندایی که موفق دارن اونقدر کار و سفارش و اینا سرشون ریخته. خب معمولا کمتر فرصت میکنن برن به یکی دیگه هم یاد بدن که مثلا چه جوری داستان بنویسن، چه جوری نقاشی بکشن، چه جوری بازیگر یا کارگردان و قابلی بشن و اینا. اینه که میر میبینی اصلا طرف آگهی زده مثلا آموزش بازیگری تخصص هنرپیشگی معروف سینما و تلویزیون بعد که میری ثبت نام کنه میپرسید استاد این استاد این چیز کیه خانم منشی برمیگرده میگه مثلا چه میدونم استاد جفری نژاد حالا هی تو مغزت فشار میاری این استاد جعفر نژاد کی بوده چی بوده و اینا هر چی فکر می‌کنی چی زیادت نمیاد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 نفر بعدی سلام خانم، ببخشید میخواستم تو این دوره های نویسندگی خلاق ثبت نام کنم. دوقطه عکس کپی کارت ملی کلاس ها در روز در هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت ه تا 21 تا پنج هزار تو منم شهری هست خیلی عضر می خوام برگه برگ آگیتون نوشته بودین مدررسه این دوره ها. استاد محمود دولت آوادی اصلا درسه استاد محمود دوات آبادی خیلی ببخشید الان این برگه آگرایی تو اینجا همراه منه اینهاش محمود دولت آبادی نوشته نویسنده رومان جاودانه کلیده بدین ببینم ببین ازیزم دوات آبادیه اینجا آه. علف و تهی. دوات نزدیک به هم چاپ شدن شما فکر میکنید از پایی من چسبیدن شبیه دولته اونم در نیست رمان جاودانه ی کلیده اون با بنا به بخرشین از بمیره بفرمین رفت اه اه اه راست میگین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 عجله کنین کلاسای ایشو خیلی زود ظرفیتش تکمیل میشه خیلی ممنون از لطفتون چشم میرسم خدمتتون. به سلامت نفره بعد بس بس, بس. بس. بس. بس. بس. بس. راهای ارتباطی برنامه رادیو رو امروز میخوایم خیلی متفاوت یعنی انگلیسی خارجی میخوایم تغذیه میشوم Hey Farshid. this is Kimberly. I'm calling from Portland， Oregon. My boyfriend， sina said that you're tired of telling your listeners how to contact your station، so I'm going to do it for you in English. For those who wish to send an email، please do so at pasvarda at radiovarda. com. Also، you can follow us using the following apps.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 and 50 بله ثانیه همه رو گفتن. فهمیدین چی شد اصلا؟ ما در این حد یعنی در حد اینترنشنال بین‌المللی داریم کار میکنیم خیلی خارجی، خیلی خارجی و خیلی هم سریع. خیلی ممنونم کیمیلی آه... از پورتلند آمریکا. راه ارتباطی رو به انگلیسی گفتند. Thank you Kimberly, thank you. Thank you. آه... very much. آه... دیگه چی بعد میگم اینجا؟ سامجی جان یه مقدار شما خارجی با خارجی حرف بزن. Uh, thank you دوست پسر داره ها این دوست پسر شنونده ما این سامی جان. نگران نكن، ما در هر چیزه، حالا ولنتاین و اینا باشه ولی به هر حال خیلی متشکرم، تشکر میکنیم سامی هیچ کاری با شما نداره، دوست عزیز که شنونده این برنامه هستین، با کملو هم کاری نداره. دوست دختر اصلا داره ما برای زمی میگیریم من اینجا اصلا مشکلی نداره. اصلا خودتون ناراحت نکنین خیلی ممنونم، خیلی خارجی شدی. اصلا یه حالی دست داد امروز با آهار. خدا شکرت.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 لذتی رو که از دیدن خودشون نصیبت میشه با دیدن و یا شنیدن آثار و تولیدات هنریشون نمیتونی یعنی به هیچ وجه نمیتونی هر چی تلاش میکنی نمیتونی بفهمی یا تجربه کنی متاسفانه قابل توجه کلیه یه علاق به فعالیت های هنری و خیلی خواست طور اگر علاقه من به حضور در محافل هنری و تخت بازی کردن محمد بهدادینا هستید اگر دوست دارید عباس کیاروستامی را درجم باسی صدا نمایید اگر میخواهید در اولین نگاه به شدت خاص و هنری جلوه نموده و در اکیپ های هنری پذیرفته شوید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 فهاشی هنری و قهقه زدن با صدای بالای سردسیبل صد برای هنرمند شدن هیچ وقت دیر نیست همکنون با ما تماس بگیرید مؤسسه ی هنری آموزشی هنرمند پردازان باب سلام و ضمن ابراز خوشحالی از درخواست 13 سناتور آمریکایی در زمینه تعدیل قانون لغو محدودیت ورود بدون ویزا به آمریکا برای شهروندان دو 21 و امروز را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماوییم استفای شهردار منطقه دوی تهران بعد از رسامنهی شدن ماجرای کتک کردن کارگران یک کارواش توسط ماموران شهرداری و تعییر ناظران از اینکه نکنه این خبر مال سوییسی جایی باشه اعلام ممنوع فعالیت نبودن محمد رضا شجریان از جانب صدا و سیما و نظر کارشناسان که در انگی اندیکوروس هم ممنون نیستن که برسه به شجریان و انتقاد دی نخوست وزیر روسیه از سیاست آلمان در قبال پناهجویان و نظر فعالان این عرصه ای که نه پس آلمان هم مثل روسیه در زمینه پناه کردن مردم سوریه فعال بشه تا اینا خوشیشون بیاد مهمترین سرخط های خبری ساعت گذشته را شاملی می شدن اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بوی بوی با سلام بناب گزارش های رسیده قیمت سکه در بازار تهران امروز سی هزار تومان افزایش پیدا کرده و باز هم مرز یک میلیون تومان را در نوردید در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مهریه یک کشور به خبرنگار ما گفت یکی از خطرات افزایش قیمت سکه مربوط به مسخرله مهریه و حجموم بعضی از خانم ها برای به اجرا گذاشتن مهریشان می باشد و یفصود مثلا اگر مهریه خانمی هزار سکه باشد فقط از دیروز تا امروز ارزش سیو 35 میلیون تومان بالاتر رفته است و همین مسئله می تواند بعضی از خانم ها را به نقد کردن مهریشان ترغیب نماید پایان مشروع اخبار کیلومتر بله همانطور که قبلا اعلام شده است شهروندان عزیز در صورت داشتن مشکلاتی در فضای مجازی می توانند با شماره 821 8۸ تمام گرفته با انتخاب عدد 6 مشکلات سایبری خود را با پلیس فتاب مچ نماگرند به همین منظور و برای پیگیری این خبر همکنون بنده قصد دارم با این شماره تماس بگیرم تا شما را در جریان نحوه فعالیت پلیس فتا در فضای مجازی قرار دهم بله بنده الان در حال شماره گیری هستم 81 818 80, بله خب حالا حالا 6 رو وارد میکنیم ببینیم که چی بله منتظریم تا گوشی رو بردارم. پلیس ب... در پایان ده راهبر ای... بفرمایید. ولی سلام اج می‌کنم خواهرم. یه چیزی ولی ولی ببینید خواهرم بنده از من کلا برداری شده. میخواستم ببینم شما میتونید به ام کمک کنید یا نه؟ بعدش ت... زنگ نه نه نه تو اینترنت ازم کلا برداری شده. توضیح ببینید من توی اینترنت با یه خانمی آشنا شدم. بعد آخ... اول یه آشنایی با خانم داشتید آره. محرم بودن یا نامحرم؟ حالیم آدم با عمش تو اینترنت آشنا نمیشه که خب این آشنایی اه. با نامحرم بله اضافه کردم بله میگفتم بعد خیلی علاقه‌مندم شدیم به هم توی این چند روز یه علاقه هم داشتید اه. البته رابطه اینا مشروع به حساب میاد آره میگفتم من خیلی اصرار کردم که خب ما بعد از این آشنایی مجازی هم دیگر رو بعد واقعا دیگه ببینیم بعدش هم خب قرار گذاشتیم اه. بعد اه... تلاش برای اقبال نوامیس مردمم هم داشتیم. خانم حالمای چلو کبابیه بعد چرتکی می‌ندازید شما یه ماسوخیارم داشتم لا بود آقا عزیز اجازه بدید دنده‌کارم انجام بدم کار پلیس رو مختل نکنید اعدامه بدین بله بله با توجه به اینکه یه چیزه فردا ولنتاینه می‌خواستم براش خرس شکلات و از این حرفا بعد... ای هم بخرم بعد انجام اعمال نفوذ گرایانه ولنتاینی داشتید با کشتی مال تو حالا چقدر شده حسابمون ادامه بدید اه. آقا آره هیچی دیگه شبه قبل از قرار یه دخانو یه شماره کارت بهم داد گفت جرمه یونه بریز به حسابم بابام مریز شده پول لازمم بعد پرداخت پول بنامم همی داشتید؟ پر. جان پرداخت پول بنامم هم جرمه مگه؟ بدی که از یه روزی که رد بشه همه چی جرمه. عجیبه. ادامه بدین شما. هیچ چی دیگه سه ساعت و نیم صبر قرار وایسادم نیومد. تجمع کجا بعد... در انتظار نوامیس مردم سه ساعت و نیم. خانم یکی دیگه ما مارو کاشته تازه پولم گرفته از من بعد شما مینویسی به حساب من؟ این چی دیگه من از خانم شکایت دارم دیگه آیدیشون چی بود؟ آیدیش زری پرکلاقی این کلاش آف کلانز بود زری پرکلاقی این کلاش آف کلانز خب یه نرابطه اینا مشروع با آیدیم ای... هست خرم داشتید بله بله جناب سرهنگ بله خودشون هم خانوم میگم با کارتم میشه پرداخت کنیم حالا که شما داری؟ گوشی جناب سرهنگ میخوان با شما حرف بزنن خبردار ب الو جناب سرحان دیگه چی میگم شما خجالت نمی کشی و روی من و جلوی همکارام وردی سرحان تو اونجا چی کار می‌کنی دیگه ها من با تو کاری نداشتم این هفته که شما بی اینجا میکونی با من کاری نداری من با شما کار دارم آقا جون سران یعنی اه من با هر جای نیروی انتظامی تماس بگیرم واسه میشه به تو آخرش بله شما تحصی کن نامه. رالی نامت بنده ای الانم تازه یه جور ما جورم شما اضافه شده اونم مزاحمت بر سر ورده از خرزاده سرگوت از دیگه کی همین خانم سرگوت که داشتی وقتشون رو بی خودی میگرفتی فکر کردی من نمیدونم یا علی ایشون هم سرگود بودن بله سرهن بیخیال خیال سرگود از خرزده هم اسخوادت علکیه میگم ببینی قبلا توی رستوران کار میکرده سرهن آقای عزیز رشده <تصفيق> سرگردی مملکت هم از خرم بد آمد آمدت بابا از موقعی که من زنگ زدم هی hey, میگه یه دونه اینو داشین یه دونه اونو داشین یه دونه کوبیده داشین یه دونه دوغ داشین داغونه بابا. بابا این چیه خب باشه پا. من به شما دست سور میدم همون جا که هستید بمونید تا من یه وای سر یارا بفرستم سراغت آقا ادامت کنن آقا جون چی میگی باش سر هنگ بله. من همین چند دقیقه پیش قرار گذاشتم تو تلگرام دارم میرم سر قدر خدافس سر هنگ آسی وای سی پشت سرت رو به دیووان حالا کسی بهت گفته بینیم بابا حال نداری بله من خدمتی شما میرتم حالا میبینی آقا جون باشه به سلگول از خزادله سلام برسیم بگو گوجه اضافه یادش نده بذاری آره گفتم الو آقای این خیلی خوب میدونه که مردم ازش بدشون بعدشون میاد. در چن نزدیک انتخابات که میشه هر بار که میخواد صحبت کنه با لحن آمرانه میگه به مردم میگه که تو انتخابات شرکت کنن. در از هدف ایشون اینه که مردم تو انتخابات شرکت نکنن. به خاطر اینکه هر بار که تو انتخابات شرکت کردن ایشون بازنده شده. بله، مقمله از تماستون. البته امثال یه جوری رده صلاحیت کردن عمرو که آقا نیازی به این طرفندم دیگه نداشته باشه دیگه. احتمالاً به حال همینم آقا برای موکمکاری گفته وگرنه امسال موسوی و کروبی هم آزاد بشن برای شرکت در انتخابات فروخوان بدن در نتیجه نهایی خیلی چندان فرقی نمی‌کنه. آقای عزیزان خیلی معمومن. خانم آقایون دیگه فکر کنم تو این چند روز شما در جریان تمام شیرین کاریایی که تو راهپیمایی 22 بهمن صورت گرفته بود به حال قرار داشته باشید از اون باسازی صحنه بازداشت ملوانان و آوردن کاراکتر زنبوش همچین گوری مگوری آرایش کرده گرفته تا حضور گسترده بانوان کم هجاب گشت ارشاد پسندی که حالا یهو تو این ایام مورد علاقه نظام قرار می گیرن همه اینا تو این کارناوال بود حضور مسئولین هم در رده های مختلف تو این مراسم خب مشخص بود مثلا هاج آقا جوادی جوادیه آمولی به این شکل از این حضور, همه جا... این حضور همه جانبه تشکر کردن وقتی داشتن راه پیمایی ببینیم چی گفتن از ملت بزرگ و ایران اسلامی حق شناسی میکنیم که در گرامی داشت این انقلاب سعی بلیغ میکنن بله، اما نکته بامزه ای که دیدن اکسای این مراسم یاد ما آورد یه گفتگوی بود که چند سال پیش خود صداوسیمای جمهوری اسلامی با آقای صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران کرده بود که در نوع خودش با بامزه شد این گفتگو این گفتگو مربوط به شب 22 بهمن سال 87 یعنی چند ماه قبل از اون انتخابات گوفتیه سال 88 ماجرای بعد از اون اون موقع هنوز تحریما جدی نشده بود پدیده اوس محمود در اوج درخشندگی خاص خودش به سر می برد سوال اول مجری هم از آقای زیبا کلام تو این مایه هاست که شما نظر مثبت خودتون رو درباره حضور پرشور مردم در خیابون ها و مشت محکمی که میزنن به پک و بوز استکبار چه جوری اعلام میکنین آقای زیبا کلام هم اینجوری جواب میده به این سوال اگر فرض بگیریم که فردا، فرض فرد میلیون ها نفر در اطراف اکناف مملکت بیان در راه پیمایی 22 بحمن شرکت بکنن چنان که در سالهای قبل ما شاهدش بودیم شما میخواید بگید که این نشون دهنده درستی سیاست‌های مجریان که بوزید مردم ببینید آ زیبا کرد من میگم بله اینجا توی گوشی به مجی گفتن جمعش کن داره خراب میشه ماجرا و اینا آقای مجی هم, هم جوری یه دفعه دیدیم پرید وسط و با ت پته ادامه دادن که واقعیت اینه که در کشور ما کارهای بزرگ رو خود مردم انجام میدن یعنی شما بگید ما اخیراً شاید در های بزرگی بودیم که توسط دانشمندان ما در زمینه‌های مخ... مختلف اینها به وجود اومدن اکتشافات بزرگ در زمین پزشکی در زمین فنی تخصصي اینها همه اینها همه این, این دستاوردها خدمت عرض کنم که نتیجه حضور ا امیگوی دقیق من همه ارزمن این هستن. هستش که همه ارزمن این هستش ده. که کلا دوئلی بوده که هر کی میپریده وسط زوتر میپریده وسط مثلا حرف وسط حرفومی یکی برنده بوده گوش کنیم ببینیم حالا همه ارزو آقای زیبا کلام چی بوده؟ بزورم اصلی طبیع... بزر... نه ببینید طبیعی هستش که نه توسط مردم انجام میشه بالاخره از کره کورماه که نمیان کار کارو انجام بدن خود مردم چیز میکنن منتهی ارزبنده این هستش که این لزوما به معنای این نیستش که حکومت و مجریان ما تمام درسته من همه حرفم این هستش اوه اوه اوه زیبا کرد این چه حرفی آقا شما تو سیمای میلی میزنید بنده خدا موجی فقط کم بود بیاد دهن ایشونو دیگه بگیره جلوشو شو شاید هم حالا بیخود نیست که الان چند ساله دیگه ایشونو راه نمی‌دن تو های تلویزیون خلاص اینجوریاست تو مملکت ما به هر حال متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست حالا متاعش گاهی وقتا میتونه ساندیس باشه گاهی وقتا میتونه برگزاری کارناوال و آوردن وسط شهر قم باشه. گویا میتونه اصلا به قیمت این باشه که خانوما کلا بی حجاب بیان تو خیابون. بله مهم حفظ نظام بقیه چیز مهم نیست که. ماشینم اشتی مام ولی ارزونوبی معصلی ماشینم اشتی مام ولی نابوداره نصندلی. ا دو شفذله باشو مو از اوناش ریسین ولی الان با گوشم خوشو داره شی با این آجانس ما جانسا عرف می زدی با متوفرته ای داره درست ملتفت شدم دیگه. بله داشت زود نیست یه ما دیگه منده بیشتر یعنی زونم دیرم هست البته ما خودمون در راننده سرویس بین شهری هستیم اوتوبوسیم دیگه ولی خوب چی همش پشت فرمون بودیم دیگه یعنی شرکت اومده چی متوفر رو سوار کرده خودشم پیاده کرده ما فقط پشت رول بودیم حالا داداشت یه چیزی فضوری نباشه گفتم یعنی ما از اوناش سیم ولی این قیمت نیمت ها چه زوریه نه بابا خیلی گرون خارج مارد چند نیاری؟ اصلا همی آنتالیا و آنتالیا اینا ببینیم ای به طرفتی دست مادر وطس رو بگیریم دوتایی بریم خارج زون؟ چند؟ نفری سه و یا خدا چه خبره خدا داشت چند روز اون یه هفته قضا مزاد اونم روشه دیگه آه یعنی خردو خوراک و اینا همه با هم دیگه زونم مشروب زون من مشروبم میدن ای خیلی هم مدلیست یعنی خب مثلا واسه یه آدم زحمت کشی مثل ما دادن هفت میلیون نقد واسه یه سفر دو نفره سخته دیگه نکره تم چه کاری آدم میذاره بیره می همین شیراز میراز خودمون هر تموم میشه دیگه. نمیشه؟ من. عزیت نکن با شیراز دیگه مملکت خودمونه دیگه اونجا که این زوری که گرون مرون نستاشه من بیخیال تور چند روزه شیراز ت... تن سه روز دو پونسن با با عزیتمون نکن نا دا دیگه یه هفته آنتالیا سه مونیم ش... سه روز شیراز دو نیم یا خدا میره باید همه هم میگی ای درفته بودیم خارج دیگه باید میدی میدی <تصفح> والا چه کاری آخره حالا که در حال آشتیم ما حال راحته پولمول که کلن نداریم یه مکت توی یا قبلمه آبگوش فرمه داریم میبریم همین تی همین زادزرود از همه بهتره دیگه <تصفيق> میخندی اید باز بری سفر میخنده چه بعضی را همی دختن باسم بابا قسمت میدم سر من من مصافه گریه نکن گریه نکن گریه نکن بیشتر از جونم من دوست دارم این دم آخر گریه نکن گریه نکن گریه نکن میبرم با خود من پولبار خاطر حالو گریه نکن گریه نکن گریه نکن میخوام خوام ببینی بالا ب خند و صبح فردا رو گریه نکن گریه نکن گریه نکنگه از هنرمدا بپرسین که برای چی به هنر رو آوردن خیلی یه لبخندی میزنن میگن. <تص> آه ببینید در واقع من هنر رو انتخاب نکردم این هنر بود که من رو انتخاب کرد اینجور من واقع خب شما هم یه لبخندی بزنین بگین آره چطور تو راست میگی ولی واقعیت اینه که به غیر از برال معدودی از نوااب هنری بیشتر آدمما برای اینکه به سمت هنر برن نقشه می کشن برنامهریزی میکنن آموزش می حسابی هم خب هزینه میکنن برها هنرمند شدن یه جذابیتهایی داره که واقعا نمیشه نادیده گرفت. سطحی ترین جذابیت هنر همی شهرت و محوبیت کهتی میتونونه توی مفل دوستانه و به این فک و ففامیلی رو فقا خودتون باشه مثلا عجم میرین میشینین بگن مثلا آره جعفرخان گیتار میزنه و خاطر مثلا همین پای ثابت تععم مهمونی و دور ها دور باشید خیلی از هنرمندنده هستن که این جنبه ای از هنر براشون کافیه یعنی واقعا کافیه یه دسته دیگه هم هستن که از هنر شهرت و محبوبیت رو همراه با پول میخوان اینا دیگه گیتار زدن و خوندن مثلا توی محافل دوستان و دوره همی راضیشون نمی‌کنه مثلا اگه تو کار موسیقی باشن میرن دنبال خوانندگی حرفه‌ای و ضبط آلبوم و کنسرت و خلاصه‌ش با رسیدن به قله‌های موفقیت واقعا زحمت می‌کشن قله موفقیت برای اینا ماهی مثلا حداقل 40 میلیون پولدار آوردن و دیدن عکسشون رو بیلبوردای شهر که البته خوب نوش جونشون زحمت کشیدن. یه ددی دیگه هم هستن اما میرن دنبال هنر برای اینکه تأثیری بذارن روی دیگران و در حقیقت از هنر به عنوان بلنگوی استفاده می‌کنن که عقاید و افکار و یا صدای اعتراضشون رو به گوش همه برسونن. اینا معمولاً یا جوون مرگ میشن یا دق می‌کنن یا گوشگی رو افسورده میشن و کار دست خودشون میدن و از اونها ممکنه هرچی دارن تو این را بدن بره. یکان دومان من هرچی که دارم مال تو یه وچ خاک منم هرچی میکارم مال تو اهل تاونی این قبیله رذیا کوی مو سفر شی شهر فرغ از سه شب خست تو از ما ملسو رخت ما تو از این سرعیه دوستم تا یادم میاد شغل ثابتی نداشته تو زندگیش هر بار بهش میگفتی چی کاره چی میگفت یه روز حسابدار بود، یه روز بوتیکدار، یه روز آرایشگر حالا دیروز دیدم یه جعبه شیرنی خریده اومده خونه ای ما که بیا جشن بگیریم دارم یه کار تازه شروع میکنم گفتم مبارک باشه، چه کاری؟ گفت هنر گفتم ببخشید گفت هنر دیگه، نمیدونی چیه؟ گفتم چرا؟ فقط حزمش فرام سخته آخه تو راهنمایی دبیرستان که با هم بودیم یه بار نتونستی نقاشی درسته حسابی بکشی خط هم که خوب نبود تجسم سبی هم نمیفهمیدی چیه صدای خوبی هم نداری که فکر کنم میخوای آواز بخونی سازم نمیزنی از عاکاسی و سینما هم که خیلی سر در نمیارری گفت چرا سینما زیاد میرم؟ گفتم باشه حالا یعنی میخوای وارد عرضه هنر سینما بشی؟ گفت نه بابا یعنی فرقی نمیکنه کدوم راستش من که خسته شدم از کار کردن و ناشناخته موندن گفتم بله گفت همین دیگه تو هیچ کاری بندزه کاری هنری آدم نمیتونه مشهور بشه برای همین من از فردا کارمو توی این حوزه شروع میکنم گفتم اون وقت کجا گفت تو فیسبوک گفتم بله همچین دوستای هنرمندی دارم من اما اصولا تو عالم هنر دو تا طرز فکر وجود داره که هر طرز فکری هم پیروان خودش داره یه میگن هنرمند همین که مثلا قلم مو رو دست دستش میگیره باید یک هدف و رسالتی داشته باشه که مثلا یا تبعیض رو ریشکن کنه یا جلی ظلمو بگیره یا مردم آگاه کنه و این حرفا و هنر بیخاصیت نداریم خب به نظر حرف درست میاد و با بالاخره هنری که دردی از کسی دوان نکنه به چه دردی میخوره ها یه دیگه هم هستن که میگن هنرمند و چه به این حرفاخه هنرمند نه سیاست نه جامعه شناسه نه هیچی دیگه فقط و فقط به هنر خودش متعهده و رسیدگی به مشکلات مردم و حکومت و جامعه و اینا این کار جامعه شناسا و سیاست و روزنامه نگاره خب یه جوره اینا هم راست میگن خلاصه این دوتا گروه همیشه رو در روی هم بودن و به هم تیک و کنایه میداختن و نه اون هنر اینو قبول داشته نه این هنر اونو قابل اتنامی میدونسته حالا اینکه حق با کدومشون هست و یا با کدومشون بوده و اینا رو ما تحجیم میدیم دخالت نکنیم والا به ما هنر اصلا؟ هنرمندون دعوا کنند ابلهون باور کنند خانم آقایون حالا این وزی... وسط داستان ولنتاین و اینا شنیدیم دیگه امسال این نیروه انتظامی اصلا اصل پیشگیری پیشگیری بهتر از درمانه رو کلن و ها رو کردند کردن و چند روز مونده به روز والنتاین به همه واحد های سنفی اتحادیه آب میوه و بستنی و کافیش ها تهران ابلاغ کردن با هر گونه مظاهر ولنتاینی که توی مغازشون اتفاق بیفته برخورد شدید میکنن اینه که آدم فکری میشه که خب حالا عزیزان والنتاین باز آخه چیکار میکنن امسالو؟ چیکار کردهن کردن؟ کجا قراره برن؟ نه فکر کنین تصور کن من نمیدونم بالاخره هر کسی یه راهی برای ولنتاین بازیش پیدا کرده حتما دیگه فکر کنین مثلا نمیدونم یکی کافی شاپ یکی طرف برده پارک یکی برده منزل یکی برده کبابی بعضی شاید از سرت کل پزی در باشن برای دفعه آسیپای ناشی از پلیس. کی میدونه؟ آشپاچه ما رو بیاد عزیزم میشه بگی چرا من امروز آوردی کلپ هزی جای رومانتیک ترز اینجا سراغ نداشتی روز ولنتاینی. عزیزم مگه نمیدونی چی شده امتا نه چی شده اون قولایی که به من دادی رو خیلی بزنی زیرشون نه عزیزم من سرم بره قولم بمیده چیه دوباره اون دختری یک بری زنگ زده بهت چه چه چه تو ها کجور؟ عزیزم چرا نفوسو بد میزنی؟ این حرفا چیه نکنه دوباره بابات دبک کرده میگه ن... پول نمیده بریم خارج از کشور عزیزم اجازه میدی من حرف بزنم آ یعنی چی همش که داری تو حرف میزنی اصلا من دیگه لام تا کام حرف نمی‌زنم خودت خب برم مسئله اینه که امسال نیروی انتظامی رفتن دختر پسرا برای ولنتاین به کافه ها رو ممنوع کرده فا... چرا زودتر نمیگی خوب همین هزار را نمیذاری قربونت برم برای همین اومدیم کل پزی وای چقدر خوب و متفاوت اره. مرسی قربونت برم عزیزم قربونت برم کل پزی برای این کارا مناسب نیست وای او... یعنی چی به اینا چه مربوطه برش کن ببین من سعی کردم کادوی کادای تو برات چشم بگیرم چشم؟ چشم دیگه چیه چشم گوسفند دیگه صبح آه. اومدم میگه چشم گوسفند برات سفارش دادم ای اینه چشم هایی خوده آه. اصلی و خما چشم چیاخه بله بله مال ما مرسی مرسی, مرسی. اوف اوف چه بوی اینه اینها بله این مال خانومه اونم پاچه او. منه این چشمه یعنی شبیه چشمه منه آره دیگه ای اینه چشمه تو؟ واقعا تو فکر میکنی این شبیه چشمه منه آره دیگه عزیزم تو دیفه نمی‌کنی ببین چه معصومیتی تو مردمکش هست این ای معصومیتی تو واقعا خجالت هم نمی‌کشی تو نه چشم منو با چشم گوسپند مقایسه می‌کنی بعد می‌خوای من نفهمم که پای یکی دیگه وسطه جان ام. تو کجا یعنی میگم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 عزیز... عزیزم وایسا <تصفيق> همه زندگی من برای تو چه تو برام زیباترین چشمه اصلا برو. چشم تو چشم پرنده است پوستتم با مثل شیر چی میگم من عزیزم پوست اون خواهرت مثل شیره همه به من میگن پوست من مثل گل میمونه این به من میگه پوستت مثل شیره بابا غلط کردم اصلا بیا بحث حیوانا تو فراموش گونه. نه اتفاقا تو یه حیوانی به نظر من برو با یه حیونه دیگه دوست شو کجا میری عزیزم عجب ای دل قلاش مکن فدمه و پرخاش مکن شهر مکن فاش مکن بر سر بازار مرا مرا سال داری و دای آب دای دای آب بپیم با مرا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 برخی از افراد که لیدر و کاندیدای خاص هستن با مراجعه به خونه های خونه‌های مردم با در, در دست داشتن قرآن کریم اونها را قسم میدن که به کاندیدای مورد نظرشون رأی بدن بله یعنی دوستان نامزد نمایندگی دیگه چیزی نمونده تو مرحله بعدی فوش نامربوط بذارن وسط برای اون کسی که بهشون رأی نمیده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 عظام روز استمبول روسیه عظام استمبول رهبری مؤذن صاحب قصر سلوت <تصفيق> به اطلاع می‌رساند با توجه به گزارشات واصله از مونیخ محل برگزاری مذاکرات صلح سوریه جواب ظریف وزیر خارجه کشورمان فدریکا مگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را با اسم کوچک یعنی فدریکا و مگرنی هم ظریف را جواد صدا میزند. ما این زایعه و حرمت شکنی بزرگ را به پیشگاه مقام معظم رهبری و باقی دلبا با حساب نظام تسلیت گفته مراسمی به این مناسبت در حرمتی تهران برگزار می نماییم شعال های مراسم حرمت ها با شکسته بازن رفته زریف برو پیام کن موگرینی رو رها کن پشت درام بسته زنده کجا نشسته موگرینی بی حیام جبان دو کرده رسوان در پایان این مراسم لیست انتخاباتی اصولگرایان گراویان بی ادعا بین هزار توضیح خواهد شد تا با رأی دادن به این لیست در آینده جلوی این بی ها گرفته شد ستاد مبارزه با بی ها صورت گرفته در دوران پسابر جامع. برگ دیگه از دفتر پسفردا خورد. صراب رحیمی شاعری که متاسفانه هفته گذشته از بین ما رفت، جای گفته: شهر من شهر باد های طولانی، باد هایی که میروبند برگ ها را و امیدها را. شهر من، شهر زمستان های بیت ها و تابستان های شهر من شهر جوانانی جوای مرگ و پیرانی جوای حیات. شهر من شهر مدار های باطل شهر پرسههای های بغزاور در خیابان خلوت شهر من خرشید خود را گم کرده است تهران به غروب ها یه بیتو به کشتی ها نفت کش ها نگاه می به مستیه مردم بر ارشه های انزوا گوش گی و تنها نگاه میکنم کنم موچها پیش میآیم تا میدان آزادی و باز می گردم کاش مرغان مهرابا مرا بر خود می بردن هر کجا راهو می کردن دربندر تهران نیان نفت کشها به روزها چشم میوازم این روزها دل خوشم شاید ها کارد آنها در این بندر دلگیر هنوز